مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتم ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستان این سخن پایان ندارد، هوشدار. گوش سوی قصه خرگوش دار گوش خر بفروش و دیگر گوش خر کین سخن را در نیابد گوش خر روت و روبه بازی خرگوش بین مکر و شیرندازی خرگوش بین خاتم ملک سلیمان است علم جمله عالم صورتو و جان است علم آدمی را زین هنر بیچاره گشت خلق دریاها و خلق کوه دشت زو پلنگ و شیر ترسان موش، زو نهنگ و بر در سفرا و جوش زو پری و دیو ساحلها گرفت هر یکی در جای پنهان جا گرفت آدمی را دشمن پنهان بس است آدمی با عاقل آقل کس است خلق پنهان زشت زشتشان و خوبشان میزند در دل به هردم کوبشان بهر غسلر در روی در جویبار بر تو آسی بیزند در آب خار گرچه پنهان خار در آب است پست چون که در تو میخلد دانی که هست خار خار وای ها و وسوسه از هزاران کسب بود، نه یک کسه باش تا حسهای تو مبدل شود تا بی, بی و مشکل حل شود تا سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سرور خود کرده ای. باستلبیدن نخجیران از خرگوش، سر اندیشه او را. بعد از آن گفتند که خرگوش چوست، در میان آر آنچه در ادراک توست. ای که با باشیره تو در پیچیده بازگو رای که اندیشیده ای. مشورت ادراک و حشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. گفت پیغامبر بکن رای زن، مشورت مستشار و معتمن من کردن خرگوش از راز ایشان را گفت هر رازی نشاید باز گفت جفت تا قایدگه گه تاق جفت از صفا گردم زنی با آینه تیره گردد زود با ما آینه در بیان این سه کم جنبان لبت، از زهاب و از ذهب و از مذهبت. کنسه را خسم است بسیار و ادو در کمینت ایستد چوندان عدو. ور بگویی با یکی دو الودا کلو سرن جا وزل اصنین شا. سه پرنده را بندی به هم بر زمین مانند، محبوس از علم، مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افگن مشوب. مشورت کردی پیامبر بسته سر، گفته ایشانش جواب و بیخبر. در مثال بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از پای را، او جواب خیش بگرفتی از او. و سوالش می نبردی غیر بو قصه مکر خرگوش ساعت تاخیر کرد اندر شدن بعد از آن شد پیش شیر پنجزن زن زان سبب کندر شدن او ماند دیر خاک را می کند و می غرید شیر. گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد خام و سست و نارسان دمدمی ایشان مرا از خرف گند چند بفریبت مرا این دهر چند سخت درماند امیر ریش چون نپس بیند نپیش از احمقیش راه همبار است، زیرش دامها قهت معنی در میان نامها لفظها و نامها چون دام هاست لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست آن یکی ریگه که جوشد آب از او سخت کمیاب است رو آن را بجو. منبعی حکمت شود، حکمت طلب، فارغ آید، اوز تحصیل و سبب. لوح حافظ، لوح محفوظ شود، عقل او از روح محزوظ شود. چون معلم بود عقلش زبتدا، بعد از این شد عقل شاگردی ورا، اقل چون جبریل گوید احمدا گر یکی گامه نهم سوزد مرا تو مرا بگذار زین پس پیش ران حد من این بود ای سلطان جان هر که مند از کاهلی بی شکر و صبر او همین داند که گیرت پای جبر هر که جبر آورد. خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد گفت پیغامبر که رنجوری بلاغ رنج آرد تا بمیرد چون چراغ جبر چپ بود بستن اشکسترا یا به پی رگ بکسست چون در این ره پای خود نشکسته ای بر کی میخندی؟ چه پا را ای؟ وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. حامل دین بود او محمول شد. قابل فرمان بود او مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه تا کنون اختر اثر کردی در رو بعد از این باشد امیر اختر او گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در انشقل قمر تازه کن ایمان نی از گفته زبان ای هوا را تازه کرده در نهان تا هوا تازه است ایمان تازه نیست که این هوا جز قفل آن دروازه نیست کرده تعویل حرف بکر را خیش را تعویل کن نزک را بر هوا تعویل قرآن می کنی پس تو شد از تو معنی سنی. زیافت تعویل رکیق مگس آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همه افراشت سر، گفت من دریا و کشتی خواندم. مدت در فکر آن میماندم، این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل و رایزن بر سر دریا همه راند و امد می نمودش آن قذر بیرون زهد. بود به حد آن چمین نسبت بدو آن نظر که بیند آن را راست کو. عالمش چندان بود کش بینش است. چشم چندین بر، همچندی است. صاحب تعویل باطل چون مگس وحمه او بول خرو تصویر خست گرمگس تعویل بگذارت برای آن مگس را بخت گرداند همای آن مگس نبود کشین ابرد بود روح او نی در خوره صورت بود خولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش همچو آن خرگوش کو بر شیر زد روح او کی بود اندر خورد قد شیر می گفت از سر تیزی و خشم کز ره گوشم ادو بست چشم مکرهای جبریانم بسته کرد تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد زین سپس من نشنوم آن دمدمه بانگ دیوان است و غولان آن همه بردران ایدل تو ایشان را معیست. پوستشان برکن کشان جز پوست نیست پوست چی بود گفت های رنگ رنگ چون زره بر آب کش نبود درنگ این سخن چون پوست و معنی مغز دان این سخن چون نقش و معنی همچو جان پوست باشد مغز بد را آی پوش مغز نیکو را غیرت غیب پوش چون قلم از باد بود دفتر ز آب هرچه بنویسی فنا گردد شتاب نقش آب است ار وفا جویی از آن بازگردی دستهای خود گزان باد در مردم هوا و آرزوست چون هوا بگذاشتی پیغام حوست خوش بود پیغام های کردگار کوزه سر تا پای باشد پایدار خطبه شاهان بگردد وانکیا جزکیا و خطبه های انبیا زان که بوش پادشاهان از هواست بارنامه انبیا از کبریاست از درم ها نام شاهان برکنند نام احمد تا عبد برمیزنند نام احمد نام جمله انبیاست چونکه که آمد نوت هم پیش ماست هم در بیان مکر خرگوش در شدن خرگوش بس تأخیر کرد مکر را با خیشتن تقریر کرد در رح آمد بعد تأخیر دراز تا به گوش شعر گوید یک دراز تا چه آلم هاست در سودای عقل تا چه با پهناستین دریای عقل صورت ما اندرین بهر عذاب میدود چون کاسه ها بر روی آب تا نشد پر بر سر دریا و چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. عقل پنهان است و ظاهر عالم. صورت ما موج یا از وای نمه هرچه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت، بر دور اندازدش تا نبیند دل دهنده راز را تا نبیند تیر دورانداز را اسب خود را داند و ستیز میدواند اسب خود در راه تیز اسب خود را داند آن جواد و اسب خود او را کشان کرده چوباد در فغان و جستجو آن خیرسر هر طرف پرسان و جویان در بدر کان که دزدی دست به ما را کو و کیست این که زیر ران توست ای خاجه چیست آره این اسب است لیکن این اسب کو با خدای ای شه سبار اسب جو جانز پیدایی و نزدیکی است گم چون چکم پر آب و لبخشکی چخم کی ببینی سرخ و سبز و فور را تا نبینی پیش از این سنور را لیک چون در رنگ گم شد حوش تو شد زنور آن رنگ ها رو پوش تو چون که شب آن رنگ ها مستور بود پس بدیدی دید رنگ از نور بود نیست دیده رنگ بی نور برون همچنین رنگ خیال اندرون این برون از آفتاب و اسوها و اندرون از عکس انوار اولا نور نور چشم خود نور دل است نور چشم از نور دلها حاصل است باز نور نور دل نور خداست کوزه نور اقل و حس پاک و جداست. شب نبود نور و ندیدی رنگ ها، پس به ضد نور پیدا شد ترا. دیدن نور استانگه دید رنگ و این به ضد نور دانی بید رنگ. رنج و غم را حق پی آنا فرید تا بدین ضد خوشدلی آید پدید. پس نهانی ها به زد پیدا شود چون که حق را نیست زد پنهان بود که نظر بر نور بود آنگه برنگ زد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ پس به ضد نور دانستی تو نور زد زد را می نماید در صدور نور حق را نیست زدی در وجود تا به زد او را توان پیدا نمود لا جرم ابسار ما لا تدرکو و یدرک بین تو از موسا و کو صورت از معنی چو شعر از بشدان یا چو آواز و سخن زنده شدان این سخن و آواز از اندیشه خواست تو ندانی بحر اندیشه کجاست لیک چون موج سخن دیدی لطیف بهر آن دانی که باشد هم شریف چون ز دانش موج اندیشه بتاخت از سخن و آواز او صورت بساخت از سخن صورت بزاد و باز مرد موج خود را باز اندر بر برد صورت از بیصورتی آمد برون باز شد کننا الیه راجعون پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعت است فکر ما تیر است از هو در هوا در هوا کی پاید آید تا خدا هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا عمر همچون جوی نو نو می رسد مستمری می نماید در جسد آن زی تیزی مستمر شکل آمده است چون شرر کشتیز جنبانی بده است شاخ آتش را به جنبانی بساز در نظر آتش نماید بس دراز این درازی مدت از تیزی سان می نماید سرعت انگیزی سان طالب این سر اگر علامه ایست، نک حسام و که سامی نامه است. رسیدن خرگوش به شیر شیر اندر آتش و در خشم و شور دید کان خرگوش می آید زدور میدود به و گستاخ او خشمگین و تند و تیز و ترش رو کس شکسته آمدن تهمت بود و دلیری دفع هر ریبت بود چون رسید او پیشتر نزدیک صف بانگ برزد شیر های عینا خلف من که گاوان رازه هم بدریدم، من که گوش پیل نر مالیدم، نیم خرگوش که باشد که چنین، امر ما را افگنت او بر زمین، ترک خواب غفلت خرگوش کن، غره این شیر ای خر گوش کن، آزر گفتن خرگوش گفت خرگوش، الامان عذریم هست هست، دهت افو خداوندید دست. گفت چه عذر ای قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شهان؟ مرغ بیوقتی، سرت باید برید، عذر احمق را نمی شاید شنید. عزر احمق بدتر از جرمش بود. عزر نادان زهر هر دانش بود. عزرت ای خرگوش از دانش توهی، من نه خرگوشم که گوشم نهی. گفت ای شه، ناکسی را کس شمار. عزر استمدیده ای را گوش دار. خاص از بحر زکات جاه خود گمره را تو مران، از راه خود برک و آب به هر جو می دهد هر خسی را بر سر و رو می نهد کم نخواهد گشت دریا زین کرم از کرم دریا نگردد بیش و کم گفت دارم من کرم بر جای او جامعه هر کس برم بالای او گفت بشنو گر نباشم جای لطف، سر نهادم پیش اجدرهای آنف. من به وقت چاشت در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم. با من از بحر تو خرگوش دگر جفت و همره کرده بودند آن نفر. شیریان در راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همره آینده کرد. گفتمش، ما بنده شاهنشه تا شانه که آن گفت، شاهنشه که باشد، شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. هم تو را و هم شهت را بردارم، گر تو با یارت بگردید از درم. گفتمش، بگذار تا بار دیگر روی شه بینم، برم از تو خبر گفت همراه را گرون پیش من ورنه قربانی تو اندر کش من لا بکردیمش بس سودی نکرد یار من بستد مرا بگذاشت فرد یارم از زفتی دو چندان بود که من هم بلطف و هم به خوبی هم بتن بعد از این زان شیر این ره بسته شد، حال من این بود و با تو گفته شد. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همه گویم ترا، حق مر. گر وظیفه بایدت ره پاک کن، هین بیا و دفع آن باک کن. جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او گفت بسم الله بیا تا او کجاست؟ پیش در شو گرهمی گویی تو راست؟ تا سزای او و ست چون اوده هم، دروغ است این سزای تو هم. اندر آمد چون قلاووزه بپیش، تا برد او را به سوی دام خیش، سوی چاه نشانش کرده بود، چاه را دام جانش کرده بود. می شدند این هر دو تا نزدیک چاه، این خرگوش چو آب زیر کاه آب کاهی را به هامون می برد. آب کوهرا را عجب چون می برد. دام مکر او کمند شیر بود ترفه خرگوشی که شیر میرو بود موسی فرعون را با رود نیل میکشد کشد با لشکر و جمع سقیل پشه نمرود را با نیم پر می شکافت به درز سر حال آن که قول دشمن را شنود بین جزای آن که شد یار حسود حال فرعون که هامان را شنود حال نمروده که شیطان را شنود دشمن هرچه دوستانه گویدد دامدان دان گرچه زدانه نگویدد گر تو را قنده دهد آن زهر دان گربتن لطف کند آن قهر دان چون قضا آید نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسی ز دوست چون چنین شد ابتهال آغاز کن ناله و تسبیح و روزه ساز کن ناله می کن که تو اللام الغیوب زیر سنگ مکر بد ما را مکوب گرسگی کردیم ای شیر آفرین شیر را مگمار برمازین کمین آب خوش را صورت آتش مده اندر آتش صورت آب منه از شراب قهر چون مستی دهی نیستها را صورت هستی دهی چیست مستی بند چشم از دید چشم تا نمایت سنگ گوهر پشم یشم چیست مستی حسها مبدل شدن چوب گز اندر نظر سندل شدان